بیا ای کی عمرت به هفت تا دورافت مگر خوفته بودی کی بر با رفت بیا ای کی عمرت به هفت تا دورافت مگر خوفته بودی کی بر با رفت همه برگ بودن همه ساختی بتد بیری رفتن نپرداختی همه برگی بودن همه ساختی به تدبیری رفتن نپرداختی قیامت کی بازاری میونی هن منازل به اعمالی نکودی هن قیامت کی بازاری میونی هن منازل به اعمالی نکودی بزاعت بچندان کی آری بری و گر مفلسی شر بری بزاعت بچندان کی آری بری و گر مفلسی شر بری کی بازار چندان کی آگندہ تر دست را دل پر گندہ تر کی بازار چندان کی آگنده تر تهی دست رو دل پر آگنده زی پنجه درم پنجه کم شوار دل ادرش و غم شوار زی پنجه درم پنجه کم شوار دلد رش و غم شود چو پنجاه سال از برون شود زیده است غنیمت شمار پنج روز کی هست چو پنجاه سال از برون شود زیده است غنیمت شمار پنج روز کی هست اگر مردمی سکین زبان داشته بافار یاد از آری فی گان داشته، اگر مردمی اسکین زبان داشته، بافار یاد از آری داشته اگر مردمی اسکین زبان داشته بافار یاد از آری داشته که ای زنده چون هستتی امکانی گفت لبا ذکر چون مرده بر هم مخوف که ای زنده چون هستتی امکانی گفت لبا ذکر چون مرده بر هم مخوف چما را به غفلت بیشود روزگار تو بار دمی چند فرصت شمار شما را به غفلت بشود روزگار تو بار دمی چند فرصت شما تو بار دمی چند فرصت شما